یان هاوس کشیش بوهمی یان هاوس کشیشی اهل بوهم بود که مردی بیباک، پاک دامن و مهربان توصیف می شود. او با نمازخانه بیت در شهر پراگ پیوند داشت که گروهی از مردانی که به موعظه در خصوص اهمیت ساده مسیحی علاقه بودند آن را وقف کرده بودند او در آنجا مبلغ بسیار محبوبی شد و از میان مردم معمولی پیروان فراوانی پیدا کرد. با آنکه عقاید مذهبی هاوس عمدتا سنتی باقی ماند، نوشته هایش در اعتراض به دنیا زدگی روحانیون به ویژه پاپ بود که در ناز و نعمت فراوان زندگی می کردند، لباسهای فاخر می و با تظاهر بسیار به جلال و شکوه و تشریفات سفر می کردند. هاوس بسیاری از اعمال کلیسارانیز که سو استفاده از اعتماد مردم میدانست تقبیح کرد. مثلا کلیسا صاحب نیمی از زمین‌های بوهم بود. با این حال از دهقانان چنان مالیات سنگینی می‌گرفت که آنها نمی‌توانستند شکم خانواده خود را سیر کنند. هاوس با روش خرید و فروش امتیازها و مقام‌های کلیسایی نیز مخالفت می‌کرد. درست مثل سرمایه‌گذاران امروزی، که در جای خاصی در بازار بورس یا جواز فروش مشروب سرمایه گذاری می کنند و انتظار دارند شانسشان برای درآوردن پول افزایش یابد. در قرون وستانیست شخصی که مثلا یک مقام اسقفی را می خرید به خاطر منافع اقتصادیی بود که این سمت دربر داشت. هاوس همچنین مخالف ادعای برتری پاپ در امور ایمانی و اخلاقی بود. بدین معنا که عقیده نداشت سخن پاپ باید بر سخن شورای کلیسا ارجح باشد. هاوس با مطالعه عمیق و همه جانبه متون دینی و کلیسایی به این نتیجه رسید که دادگاه های کلیسایی نباید به محاکمه بدعت بپردازند. او همچنین عقیده داشت که اربابی کلیسا تنها به مغربان مؤمنان راستینی که مانند مسیحیان نخستین زندگی ساده و محقرانه ای دارند تعلق دارد. در سال 1415 از هووس دعوت شد با امنیت عبور در شورای دینی کنستانتین حضور یابد تا عقاید و نظرهای او مورد رسیدگی واقع شود. اما همین که به این شهر آلمانی وارد شد به جایی آنکه با استقبال گرم روبرو شود برخلاف انتظارش به زندان افکنده شد و ماهها در آنجا ماند شورا بر این عقیده بود که او بدعتگزاری خطرناک است چون بسیاری از رهبران کلیسا انتقادهای او را به سو های روحانیت و دستگاه تفتیش عقاید حمله به کل تشکیلات کلیسای کاتولیک تلقی می کردند. شورا به دادگاه تفتیش عقاید تبدیل شد و به هاوس اجازه داد در برابر آن از عقاید خود دفاع کند. مسئول تفتیش عقاید کوشید نشان دهد، که عقاید او کاملا شبیه عقاید اصلاحگر انگلیسی جان وی است که پیشتر از سوی شورا بدعتگزار خوانده شده بود. هاوس بدعتگزار شناخته می شود. اما هاوس در برابر مأموران تفتیش عقاید بر سر مواضع خود ایستاد و به آنها اعلام کرد به خاطر نجات جانش مرتکب شهادت دروغ نخواهد شد. دادگاه تفتیش عقاید او را بدعتگذاری سرسخت شناخت و از مقام کشیشی خل کرد و سپس او را تحویل دوکلوی از پالاتین داد. این اشرافزاده آلمانی نیز هاوس را تحویل مجریانه اعدام داد که او را در شش ژوئیه سال 1415 در چوبه مرگ مرک سوزاندند. مقامات خاکستر او را پراکندند تا هیچ بازمانده ای از او به بوهم بازگردانده نشود. چگونگی مرگ هاوس برای آیندگان ثبت شد هنگامی که مجری اعدام آتش را برافروخت. استاد بیدرنگ شروع به آواز خواندن کرد و هنگامی که برای سومین بار شروع به خواندن کرد، باد شعله آتش را به صورتش پراکند و او در حالی که در دلش دعا می‌خواند و سر و لبهایش را تکان می‌داد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیش از آن که مرگ کاملا او را فرا بگیرد، انگار که حرکتی کرد و دو سه بار پدر ما را با شتاب خاند. هرچند دستگاه تفتیش عقاید جسم یان هاوس را نابود کرد، نتوانست عقاید او را مسکوت گذارد، و در پایان این هاوس بود که بر دستگاه تفتیش عقاید پیروز شد. اهالی بوهم به تکفیر او هیچ توجهی نکردند و به او به مسابه قهرمان ملی عرچ گذاشتند. در واقع مرگ او با کلیسای بوهم، و ناسیونالیسم بوهمی ارتباط نزدیکی پیدا کرد. در جنگ‌های قرن پانزدهم، حوسید کلیسای بوهم با الهام از موضع مستقلی که هاوس اتخاذ کرده بود، استقلال کامل خود را از روم تثبیت کرد و کلیسای روم دیگر هیچگاه نتوانست در بوهم دادگاه تفتیش عقاید برپا دارد. پروتستانها در سراسر اروپا هاوس را نخستین شهید خود می‌دانستند. جیرولامو ساونارولا جیرولامو ساونارولا مانند یان هوس اصلاحاتی را در درون کلیسا به انجام برساند ساونارولا از راهبان دومینیکی ایتالیایی بود که در دوره رنسانس داد و ستتهای مالی و دنیاطلبی کلیسا را به چالش کشید و جان خود را در راه شور و اشتیاق اصلاح طلبانه اش از دست داد تاریخدان باربارا توچمان در قطعه زیر دنیا تلبی مورد اعتراض سووننارولا را چونین توصیف می کند. در دوره انسانگرایی هیجان انگیز رسانس پاپها پا ارزشها و سبک زندگی شهریاران غارتگر شهرهای ایتالیا را اختباس کردند. فرمانروایان ثروتمند خوش و بیوجدان ایتالیا که مدام با هم در ستیز بودند به دلیل چند دستگی و حوزه محدود قلمروشان، چیزی بیش از حاکمانی ناهمساز نبودند. شش ششپاپ شامل الکساندر ششم، پاپی که جیر و لامو خشمگینش کرده بود، در باز مالندوزی و تجمل طلبی از سرمعشقهای خود دست کمی نداشتند و به خاطر جایگاه برترشان معمولاً حتی بدتر هم بودند. ساوانا رولا بدعت گذار نبود، بلکه عقاید دینیش با اصول اعتقادی کلیسا، در پایان قرن پانزدهم منطبق بود او میخواست نظام پاپی مسئولیت روحانیش را به یاد آورد و دارایی‌هایش را رها کند و در عین حال میخواست هم کیشان مسیحیش برای کسب خلوص و پاکدامنی در زندگی خود تلاش کنند اصلاحات در فلورانس ساونارولا برای مدتی موفق بود در خیابان‌های فلورانس آتش برپا می‌کردند و در آن چیزهای بی ارزش، لباسهای لباسهای شیک، کتابهای غیر مذهبی و وسایل بازی را می‌سوزاندند. بعد هنگامی که فلورانسی‌ها خانواده حاکم مدیچی را بیرون راندند و کوشیدند شکل قدیمی حکومت جمهوری را از نو برقرار سازند، ساونارولا به دیکتاتوری واقعی تبدیل شد. اما به واسطه شور و شوق اصلاح‌طلبانه‌اش با الکساندر ششم یکی از دنیا طلبترین و بیبند و بارترین پاپ هایی که تا آن هنگام بر تخت پتروس تکیه زده بود در افتاد. الکساندر از ترس این که شور و شوق برای اصلاح اجتماعی که ساونارولا الهام بخش آن در فلورانس بود به زیان او تمام شود با پیشنهاد منصب کاردینالی کوشید او را تتمی کند. اما ساونارولا این رشوه را نپذیرفت و تکفیر شد. سپس الکساندر به دستگاه تفتیش عقاید فلورانس دستور داد این راهب دومنیکی را محاکمه کنند. ساونارولا در زیر شکنجه بسیار شدید به دیدن رویاهایی اعتراف کرد. دادگاه تفتیش عقاید او را به خاطر داشتن عقاید بدعتگزارانه مقصر شناخت. گرچه جرم واقعی او انکار اختدار پاپ در نظارت بر خدمت مذهبی او بود. ساوانارولا را تحویل مقامات عرفی دادند که او را در سال 1498 در چوبه مرگ سوزاندند. دستگاه تفتیش عقاید برای مبارزه با عقاید علمی مدرن به کار شاهد اعدام یانهاوس و جیرولامو ساوانارولا بود، شاهد طلوع اصر علمی در اروپا بود. بسیاری از عقاید اندیشمندان جدید با کتب مقدس، به ویژه با آموزه‌های کلیسا، در مورد طبیعت عالم در تضاد به نظر می‌رسید. رهبران کلیسا دستگاه تفتیش عقاید را درست همانطور طور که برای سرکوب بدعتگزاری و مخالفت سیاسی به کار گرفته بودند، برای جلوگیری از تحقیق علمی نیز به کار گرفتند. آنها از این بیم داشتند که تفکر مستقل در حوزه علم پایه‌های قدرت کلیسای کاتولیک را باز هم بیشتر سست کند کتاب مقدس در باب تمام وجوه دانش بشری از جمله موضوع‌های علمی چون رابطه زمین و خورشید مرجع نهایی تلقی شد چرا که اگر نادرستی کتاب مقدس در هر یک از این حوزه‌ها ثابت می‌شد در عرصه های دیگر نیز ممکن بود با چالش مواجه شود این بود که دستگاه تفتیش عقاید به محاکمه دانشمندان اقدام کرد. جوردانو برونو جوردانو برونو یکی از اندیشمندانی بود که دیدگاههایش با کلیسا مغایر بود. برونو عضو فرقه دومنیکن و فیلسوف، ستاره شناس و ریاضیدانی سرشناس و همچنین معلف آثار زیادی در عرصه دین و علم غیب بود. او در اواخر قرن شانزدهم هم در سندومینیکو مدجوره در ناپل زندگی می کرد. برونو که نمی توانست محدودیت هایی را که کلیسا برای مطالعات و اندیشه هایش قائل می بپذیرد، سرانجام فرقی را ترک کرد و از کاتولیک بودن دست کشید. از ایتالیا گریخت و سفر درازی را به سوئیس، فرانسه، آلمان و انگلستان آغاز کرد. برونو در آثار مهم خود در مورد طبیعت جهان، که در خارج از ایتالیا منتشر شد، موضوع حرکت زمین به دور خورشید را مطرح کرد. این نظر مغایر آموزه های کلیسا بود که از الگوی زمین محوری طرفداری میکرد کرد که در آن زمین مرکز عالم تلقی می او همچنین اظهار نظر کرد که باید از کتاب مقدس به خاطر آموزه های اخلاقیش تبعیت کرد، نه به عنوان یک مرجع اطلاعات علمی. برونو فکر می کرد دستگاه تفتیش عقاید به او کاری نخواهد داشت چون او فرقه دومنیکن را ترک کرده بود. این بود هنگامی که دوستش جوانی مونچنگو سیاستمداری مهم در ونیز در سال 1591 از او دعوت کرد که به وطن بازگردد، برونو فکر کرد بازگشتش به ایتالیا بی خطر خواهد بود. متاسفانه ارزیابی برونو در مورد میزان توجه دستگاه تفتیش عقاید ایتالیا به تحول عقایدش و به نوشته‌هایش اشتباه بود. در سال 1592 او را در ونیز به زندان تفتیش عقاید انداختند که در آنجا چند خطای کوچک را در تفکرش پذیرفت. اما این پذیرش مقامات دستگاه تفتیش عقاید در روم را که خواستار استردادش بودند قانع نکرد برونو در سال 1593 به زندان تفتیش عقاید روم انتقال یافت و در آنجا شش سال دیگر مورد بازجویی قرار گرفت و به او دستور داده شد از تمام نظریاتش در مورد حرکت سیارات دست بردارد و او از انجام این کار امتنا ورزید برونو را محاکمه و به بدعتگزاری مقصر شناختند اما او به مفتشان خود گفت شاید ترس شما از صدور حکم بیشتر از ترس من از دریافت آن باشد او را تحویل مقامات عرفی در روم دادند که به میدان عمومی شهر به نام کامپو دفیوری یا میدان گلها منتقل شد زبانش را در یک زبان بند گذاشتند تا نتواند برای جمعیت صحبت کند در هفت فوریه سال 1600، یکی از نخستین پژوهشگران علمی اروپا در چوبه مرک سوزانده شد. هم قطاران نیز زیر نگاه تیزبین دستگاه تفتیش عقاید ایتالیا قرار گرفتند. بعدا در قرن هفدهم یک دانشمند مشهور دیگر گلیلی گالیله، موقتاً موقتا آزادیش و تقریباً زندگیش را از دست داد. چون او نیز مانند برونو آموزههای سنتی کلیسا را در مورد سرشت عالم به چالش کشید. گالیلی و گالیله ریاضیدان، ستارش و همینطور فیزیکدان بود. بسیاری او را پای روش تجربی در کاوش علمی می گالیله در فلورانس تحت حمایت دو اعظم این شهر ریاضیات درس می داد. گالیله در تدریس خود با این سوال خطرناک مواجه شد که آیا نظریه زمین عالم را لازم است با الگویی جایگزین کرد که در آن زمین و سیارات به دور خورشید میچرخند؟ یعنی نظریه خورشید را پذیرفت که بیش از یکصد سال پیش از آن ستارشناس لهستانی نیکاس کپرنیک مطرح کرده بود؟ گالیله از موضع کپرنیک به شدت دفاع کرد گرچه مغایر آموزه های آن زمان کلیسا بود که گفته میشد بر اساس کتب مقدس است. گالیله برای آشتی دادن این دو موزه در سال 1615 نوشت ممکن است روشی که من با آن می توانم با سرعت و اطمینان نشان دهم که موزه کوپرنیک با کتب مقدس مغایرتی ندارد برای اثبات حقانیتش و اینکه عکس آن نمیتواند معتبر باشد. به هزار دلیل نیاز داشته باشد اما از آنجا که دو حقیقت نمیتواند مغایر هم باشد لازم است که تئوری او و کتب مقدس موافق هم باشند دستگاه تفتیش عقاید مایل نبود موزه گالیله را چیزی بیش از نظریات و برونو تلقی کند گالیله نیز به خاطر سماجتش در آمیختن علوم مقدس و دنیوی و قرار دادن خود در مقام مفسر کتاب مقدس خشم کلیسا را برانگیخت. جرم گالیله گستاخی در تفسیر کتب مقدس در نوشته ها و آموزه‌هایش بدون کسب اجازه از کلیسا بود. پاف اوربانوس 8 به ماموران تفتیش عقاید در روم دستور داد کار گالیله را مورد بررسی قرار دهند. و یافته های خود را به واتیکان گزارش کنند تا تصمیم گرفته شود که آیا این دانشمند را باید به اتهام بدعتگزاری محاکمه کرد یا نه؟ دستگاه تفتیش عقاید آثار گالیله را محکوم کرد کار گالیله محکوم شد در سال 1632 او را به روم فراخواندند تا در برابر دادگاه تفتیش عقاید حاضر شود او در این هنگام 68 ساله و بیمار بود. گالیله پس از های فراوان با مأموران تفتیش عقاید پذیرفت که از آموزش اصول کپرنیکی دست بردارد. در عوض نکات مهم آن را در اثری به نام دیالوگ نوشت که در آن سه نفر در مورد دیدگاه خرشید محوری عالم بحث می‌کنند. باز هم او را به رم فراخواندند تا در برابر اداره مقدس حاضر شود. محاکمه دیگری از سوی دستگاه تفتیش عقاید صورت گرفت که طی آن ماموران تفتیش ظاهراً این ستاره شناس مشهور را در معرض شکنجه فکری هرچند نجسمی قرار دادند گالیله درباره تجربیاتش به دوستی نوشت سرانجام به عنوان کاتولیکی راستین مجبور شدم از نظرم برگردم و به عنوان مجازات دیالوگم ممنوع از انتشار شد و پس از پنج ماه از روم مرخص شدم و از آنجا که در آن زمان تا اون در فلورانس شویو پیدا کرده بود، با دلسوزی کریمانه، خانه عزیزترین دوستم در سینا سی اسخف اعظم زندان من تعیین شد. پس از حدود پنج ماه، هنگامی که تا اون از شهر بومیم رخت بربسته بود، در آغاز سپتامبر همین سال، سال 1633، حضرت پاپ به من اجازه داد، که در محدوده کوچک آن ای که اینقدر دوستش دارم، در فراخنای دشت و صحرا زندگی کنم. بنابراین به دهکده بالوسکارد و از آنجا به آرسری بازگشتم. جایی که هنوز هستم و هوای پاکیزه و فرحبخش تنفس میکنم و از فلورانس عزیزم چندان دور نیستم. خدا نگهدار. گالیله در سال 1633 به بازداشت خانگی در فلورانس، برای بقیه ی عمرش محکوم شد اما ماجرای او به همین جا ختم نشد دستگاه تفتیش عقاید طی قرنها به بررسی موضوعهایی که او در قرن هفدهم مطرح کرده بود ادامه داد در سال 1984 بود که کمیسیونی از طرف کلیسا مأمور شد بکوشد آموزه های گالیله را در نظر کلیسا قابل پذیرش سازد و در مورد قطعیت موضوع‌های مطرح شده از سوی او بررسی کند در سال 1993 کلیسا پذیرفت که سازش عقاید گالیله با آموزه‌های کلیسا امکان پذیر است اما کلیسا هنوز از گالیله اعاده حیثیت نکرده است سرنوشت این قربانیان سرشناس دستگاه تفتیش عقاید والدوسیان فراتیچلی شهسواران پرستشگاه یانهاوس، هاوس، جان دارک و دیگران از این حکایت دارد که خوزه فعالیت دستگاه تفتیش عقاید تمام اهالی اروپای غربی را دربر می گرفت. همچنین حکایت از این دارد که چگونه نهادی که معموریت داشت حافظ یک اصل یعنی یک پارچگی دینی باشد بر اثر منافع آشکارای غیرروحانی، روحانی یعنی آزمندی و مسلحت سیاسی منحرف شد. دستگاه تفتیش عقاید نتوانست به هدف اعلام شده اش وفادار بماند و در زوال و انهتات کلیسا که قرار بود از جامعیت آن دفاع کند نقش ایفا کرد.